من شهر رمضان خدا آفر شاید آخرین باری باشدیم دعا رو میخونیم اللهم رب رمضا شهر رمضان من از همه شما عوض میخواق اجازه میگیرم یه بار دیگه این جبله رو بگم و شاید دیگه ملول میزید جبله یکشک بربون احمد خدا قلبون الله ربي ربي ربي ربي. اللهم رب شهر رمضان الذي هَنزَوْتَ فيه استغالا ابادج بي ازيابا با عبادت چم صالح البدا سلام سل الله و محمد و محمد قلبم ای کاش من شب گریہ کنیم چون توی گلوت میونه توی سینه میونه مریض میشی بابا خدا وقزی رو حتما گریہ کن آروم بشی حتما بدون امام رضا بدرقت میاد رضا هذا بيد جلاله هاي ماشي يا ابو وغلي <تضغطي> حتى بيت جاء في عامي عزة أبي كل عارة فاغفر لي آیا تبار من بازمونده یا نه؟ تبار چیه؟ این باری که من در خونه دوردم هنوز یه بگارش مونده که نخریده خریده و قفلی فل جدنو بلزا یا انسان رحمان اللهم حازم شهر و رمضان هلذی انزل القرآن همش ان يتبع الفجر من ليلة هذه او يتسرم شهر رمضان ولا ولجغ بل تبعد او ظنب تريد ان تؤذبني به يوم الغال اللهم لا تظهر روز داری قرار نده. یعنی سال آخرم قرار رمضان. ده فراغ. گفتم که فراغ را نبینم دیدم آمد به از آنچه راود میکنی حاضر تا وقتی بزنه ترمنو